شما شروع کنید از این آخر شما رو فر دوست عزی چند دقه پ رو معرفی کنید سمتتون جایگاهتون از اون شرکت هستید لتیکه این, این آشنایی صورت می گیریم میخوایم مواسم رو و تر باشه صالهایی که می نمونهایی که میاریم می مرترت با شغل شما و بیزینس شما باشد چیزایی که میگییم مفید باشه تایشه اویک باشه سعی کنیم اگر نمونه من دارم مشابه در حال بیزینس شما نمونهار میش بودیم از ارزش آخر، تا چط بیشتر خود رو معرفی کنین به نفع منه یعنی من نفع تو جفتمونه هم من هم شما بهتر میتونیم از زیر برام. بفرمایید. روز سلام خدمت دوستای دوستان. من علی ایوبانی هستم از منطقه صنعتی کاهنیزه. فعالیتم در زمینه پیمانکاری ساختمان هست. تو کارم زیاد مؤخر نبودم. به خاطر همون هم یک تشکیلات بهتری راه اندازی کنند و از رمان بیشتر بحقه برگید چند ساله که این کار انجام میدونی؟ همکاران من موفقیت زیادی شما من ده سال بیشتر این کار رو انجام دادم. ولی من در گرفت کار موفقیت کمتری داشتم کار بوده ولی نصاب برگی دوستانیم پیشرفته زیاد داشتم من الگرد پیشرفت نداشتم خلاص. با این طور رو شدن شدم گفتم بیام اصلا هم عوض شغل زمین تولید یا عوض کردن از چیزی یا مثلا تبدیلی، ببینیم این خاص همون مدین نیست این کارو میکنی، دولو پای شاقه بیام ازید اگر راهش اصولش را یا دیگری بتر انجام نظر من اینه. ولی من طباقه زیاده کنم <تصفيق> <تصفيق> نه مطمئن باشید اصول علم, علم هر جایی بخواد خواهد به سنت بشه بشته مطمئناً بیشرفت خیلی بوده خیلی سعی تردم بیشرفت میکنم اما مثلا داریم ما کسایی که کار میکنیم دیدگاه سنتی، کاسبی سنتی داشتن چه سال، سی سال به سنتی بوده تولین داشتن الان آمدن علمی کردن کارشون و چور رشت کردن تو شوش مثلا من نمونه داشتم بوده باربری داشته بارا این سنتی داد بیداد این وقت پسرش از انگلستان اومد اعدام تصمیم میخواست جا بده برگشت اینجا و ما رو پیدا کرد، مراجعه کرد تونستیم کارشون رو علم کنیم. الان خیلی رشد خیلی خوبی داشتن خیلی هر جا که سنت باقیه میخواد بخواد ترکیب بشه واقعا بخوادیم خواب شما دسته ناصر رو دیگه هستم مدیر مدیر، مدیر جان مادما استاد از روح نوشی نمی ردی مدیر مدرس درست مدیر بود بود داش نمی کجاست حالا جان کجاست که من این بود تو دیدی چیزی بود از قندگی چیزی نیست خب جناب استاد بالاتر چند سال می کاری؟ من در باید این اولادم یه دو سال کسی داریم کار میتونیم چه پیش شده به این بودیم خب بعد باید رو قرطت میمکنیم باید خودم انا امام تمام حسن قازمي هستم. شيکردم هرچی یارم حالات دادم. و عمده خردهی موندی ماشین از خودتون اجاره ما شنون از خوی مورد توی شهر میدن و از شرکت بازاگانی هم سانگه هم سانگه هم هست بفهم شما کنم. شما من زبان است. برد. من, بس من آه. آه. آه. آه. میخوام تو کار مدیدیت وارد بشم. وارد هم خوبه؟ کامپیوتر نه؟ متعجم. خوب شما دستان عزیزی برای آبا خدا سلام عرض عدو احترام و بحفت خدمت رفتان عزیز و بستانم من سلطانیان هستم اکبر مدیر محسسی مشابوری شعولی و کاریابی آفتاب شد و شما سمیتی افاسابار توی وحش دولتی هم موجودی برانسپاری خدمت دولتی تو آبا فازیلا هستم به وحش خصوصی خب یه خان داریم میگه خان نداریم اینجا شما شما بودیم شما بود؟ سلطانیام. آخبار سلطانیام؟ آره آره آره. آره, آره میکنم. درست. پس این پس کاریابی دارید و. یه هم موجب ات... خب <تصف> شما دست ازش میفهمید؟ حالا؟ بنی هستم. خب رسیه اصلی کاری من کلا نظامی بودم بازه شسته این رای مسلح درسته بعد سالها سابقه مدیریتی دو بخش مختلفی مختلف چه یعنی دولتی، بخش نظامی و شرکت های خصوصی داشتم خب یه بخش هم چون بر اساس رشتم که بازردانی بود خب یه سال رشته مالی فعالیت داشتم <تصفيق> و به سال هایم که یه بخش تعاون و اتحادی های کشوری تعاون فعالیت داشتم که تا همزه هم هستش الان در حال و حاضر شرکت بازرگانی رو داریم وابسته به سازن تمنیش مای نیرای مسلح هرگان، همین برگان دارم بر... شرکت <تصفح> فعالیت های بازرگانی مدر هست اونجا و فعالیت های بازرگانی رو در تقارم شده وقت در سطح ملی به خاطر نوع فعالیت و تحت پوشش بودن نبذارت کنه بازرگانی رو حالا در حال هر جمع چون سازمان جهیدی رو باز کردیم به رو با تشکیلات و وسیع نیاز بین دیدم که این موقع اطلاعات به روز بشه و توی مداریت استراتژیک سازمانی حتی بازاریابی فروش، حتی مالی، داری خادمان به روز بخونم تا بتونم مجموعه تماما دو بزرگی هستش حتی فرمان، مطمئن با شما فرمشت حالی من نوید شیبانی هستم در زمینه آیتی و کامپیوتر فعالیت میکنم عضو حیات مدیره شرکت مشاورم هستم سایت هاستیران ما شما تو مجموعه هاستیران فعالیت میکنم خوب خیلی ممنون متشکرم. هم ما هم یه مقرار کلو ما معرفت میکنیم نمیدیم ستا برزمان هرکش خودش نمیدیم من خویه هستم نمیدنم چقدر ما رو میشنسید تو سایت ها ما رو سیش کردیم مدرس دانشگاه هستم، مدرس دانشگاه تهران، دورای ژی بی ای و مترجم، یازده عنوان کتابت خصاصی تو زمینه های ارتباطات، تبلیغات، بازاریابی و فروش خیلی اکادمیک نیستم، واقعیت دارم بهتون میگم خیلی تهولیک نیستم، بیشتر کار اجرایی میکنم ه سه روز دانشگاه ترییس سه ساعت دانشگاه تدریس می‌کنم بقیه روزان و کار اجرایی انجام می‌دم از بچگی توی مغازه دارمم بزرگ شدم با مشتری با فروش درگیر بودم دیدم شنیدم گوش کردم چیزهایی یاد گرفتم. عضو <تصفح> اننجانطیقات بازار اروپا هستم عضوجانان آنتح مده امریکا هستم و به خاطر اینکه به روز باشم به خاطر اینکه علمم علمه به روزی باشه هزینه میدم مای 15 یورو شاید کم باشه ولی مجبورم به حسابشون واریز بکنم برای که جلیدترین های علم خودمو از اونو دلیاف بکنم بدونم، بشنسم، آگاه باشم، تو مشاوره ها میتونم ازش استفاده بکنم شاید کمتر برند مطرحی تیم مملکت باشه که به من مراجعه نکرده باشه از اون آقای گرامی گرده تا شاهیان و کسایی که لا زیر منجماهاش بودن از تا هیلان کسایی که لخواه نمیدونم با اکثرشون کار کردیم، پروژه اجرایی داشتیم، فعالیت کردیم و غیره حالا برای من خودم میتونید سایتم ببینید. اون <تصفيق> علی خویری اگر تو گوگل سرچ کنید میاد اطلاعات ما، رزومه ما، فعالیت‌های ما، وب‌سایت کار کردیم، با شرکت‌هایی کار کردیم، کتاب‌های ما، فعالیت‌های ما میتونید اونجا مطالعه کنید، ببینید. یه سراغ وقت درس ما. فکر کنم ما 4 تا جلسه که من شما اصن درسه. و با عنوان ما شکریم بازریان میگرمی که اینو بازر بازر میگرمی من روال کارم رو بهتون میگم چون نگاه کنید من یک مقدمی من شما بگم ما دو نوع تدریس داریم یک تدریس اکادمیک دانشگاهی داریم این که دارم میگم تو ایران آنت کشکاهای دیگه ها این تدریس اکادمی و دانشگاهی من کمک کنم سکنم و زنگی بی باش باشه میشه باید ما در واقع دارم. توی ممکت خودمون کشورمون. حالا این دومی جدیدن راه افتاده. حواهی که همش آکادمی و بود. یعنی صرفا شما داخل روک و بازارگیوی هم داخل کلاس شروع میکردم و یاد دارم که حالا مرد حفظ کن. روزو به نیوز یاد حالا مورد دوممو من خدمش میگم که آیا آموزش های اجرایی و در عملیاتی چه آموزش و دانشگاه هاروارد چیگو این کار انجام میه چون اگر شما سرش کنید تو کل اینترنت به ز best انBA ی Universityتی بهترین دانشگاه ده MBA اولین دانشگاه هاروارد می چرا چون دانش هاروارد سی سال بی اومد کل دانشگاه ها رو زیر رو کردیم یعنی همه از زیر سالوارد این هننه رو داشت این جحت داشت که چهار سال دانشگاهش رو تعطیل کرد در دانشگاه رو قفل کرد گفت تا حالا محی یاد میدادیم می خود را میداد کنید. چقدر چمارتی که مدرسه جد یاد گرفتید، نمیدیم هم، ریازی، هفتگردی، خرون، هفتگردی، چماریش؟ الان برای کار درست خورده، پایه ما رو، سواد ما رو افزایه یعنی واقعا علمی که به کار نیاد، به کار برده اون اونه علم نیست. جرعت داشت چهار سال دانشگاه رو که که من میخواهم، واقعا آره اجرایی، انجام بدم. و این که دارم میگم، مثلا مقدمه خود مطمئن عرضتون هم که وارد بحث اصلی باشیم که چیویه کار ما چیویه این کلاس میخواین مهمگیه این کار رو انجام بده. اومد گفتش که یک مدیر و که میخواد که این دانشگاه فارغ التحصیل باشه باید داره کارات کار کنید و رزمی رو اووردن داخل کلاس آموزش میرادم مگه میشه برای چه جرد کده؟ من میخواهم مدیر باشم، هفته هم کاراته کار کنم؟ یا امتحانی که استاد از دانشجوهاش میگیره خیلی جالب بود بادی جامپی بیدید توی لنجرک میره بالاک باند پرچس پر بکنه کنید استاد بخند از شما امتحان میگیره شما دوره فروشندگی داریم اونجا یا اصلا مستر لیسانس فروش بخند اونجا بگیره با میسید خانم که یه خانم زنونی بید بیا خودتو ببند اول ب دوباره میاوله یه بار دیگه. اینم رو. چهار بار میپنی تا 20 می رفت میده. چه فقط من که فروشنده بشن؟ اون چرا به این کار داره؟ اینا همه بر اساس کاری که انجام میدادن انتظاری که داشتم. الان شما اونا که مثلا دکترای بازاریو فراغت تقسیم میشن، یاد بیرون از دانشگاه من نمونه داشتم استفادهش کردم برای مدل فروش سازمانی. یه ماه از پول شرکت به رأس کسکی ولی آدم دیپلم میگیرم تجربه نه سابقه داره, داره، چکنگرد خورده من آدم که کلاس راحت صحبت میکنم از کسی نمیترسم راحت سوال میکنم من اگر حرفای شفاف و, روک و خودمونی باتون زردم نگید چرا سوال کتابی حرف میزنید من یه آدم خاک هم تو بازار چکنگرد خورده میاد میخوره اصلا سازمانم میخوره سازمان شما بالا اینفلامان داره چون واقعا تجربه کرده واقعا دیده واقعا جرأت داشته علیکم که داریم مطلن های آموزش های اجرای عملیاتی ما می خوام این کلاس این کار انجام بدیم نه چرا استاد به من جزوه نمیده یاد نمیده اصلا ما رو به بازی گرفته نه این چالش ها ممکن داشته باشن بعد شما ولی من دوست دارم اگر قرار چهار جلسه سه ساعت و 4 ساعت با باشیم مثلا 10 ساعت تو این 10 ساعت شما اگر دو مسئله کاربردی مفید یاد بگیرید بهتر از خودشه من یکی از کتابام اونجا باز کنم میتونم 20 ساعت شما رو مشغول بکنم نمیخوام بیام کار بدی نه شما کی هستید این کاسه سنتیه تا حالا کار کرده تا حالا تجربه اجرایی داره چرا دوره ام دی ای اصلا چرا دوره ام دی برای آدمایی که تجربه دارن میذارن برای چی رو ما دادن چون میخواد اصول علمی رو با سنت قاطی بکنه کنارش آموزه ضمن خدمت داشته باشه نه اینکه بیای اینجا شون 10 ساعت، 10 ساعت آموزش ببینید یادتشو بکنید، جذب بدری بکنید، حفظ بکنید، من جالب همش اوپن بوکه. حتی تا الان من جربه همهش رو که حتی کارسل از دانشگاه و اون یه نامه وار، از حرفات دانشگاه که چرا تنها استاد که امکان داشت بازاری بوده ای تامیل توی، اگر من دوست دارم میخواد مثل دانشگاه زد، من هم شما رو میزارم کنار دیگه اونجا این مدرسه کنم. اگه نه، من دوست دارم اینجوری آموزش بدم، اینجوریم، من تو کلاسی بازاری به دانشگاه کلاس دانشگاه دارم از سی جلسه ه تا جللسسهاش بیرونی. بازار قاین بازار گیشا امتحان من چجوریه؟ میدن سر بازار گیشاوا با نیستید میگه بچه ها اینجا کلاس امروز اینجاست یه مغازهدار نشون میدم میگن هرکی بتونه این مغازه رو متقاعد کنه این ماژیک رو بهش بفروش من پنهه بهش میدم این این چالش ایجار میشه این اه, کمک میکنه که طرفره کتاب چیزی ایز که آدم از توش چیزی یاد بگیره من از مثلا آقایی مثل گرامی گولستان رو داره آسان موتور داره از آقایی مثل سلیمانی کالر رو داره چیزها یاد گرفتم که تو تمام مدت تحصیدم که بودم یاد نگرفتم لیسانس من پنج سال کشید فوق لیسانس هم سال کشید ولی چی؟ چون همش سوال میکردم گفتم به چه درد من همیشه خود من عادت داشتم. اگه سه روز دانشگاه می‌رفتم تو حسید بقیه روزو از خونه می‌کنم اصلاً خرب کار میکردم. هنوز من موتور 20 تایی دارم. هنوز دارمش. می‌خوام بهتون بگم من این چندش بودم. از خودم میگم خاطرنک یاد بگیریم، از هم یاد بگیریم. هنوز من موتور 20 تایی دارم. هنوز من بعضی از کوچه‌پاس کوچه‌های تهرانو چون ویزیتور بودم، یه کوچه به اسم مغازه می‌شناسم. این واقعا کار میکردم چی, چی مخواد من بده این آموزش ها من همون از 6 سال برای توی میکشم همه دو ساله میگیرم، همه سه ساله میگیرم ولی من نم نمیخوام سریع مدرک بگیرم، میخوام مدرکم کنار کارم هر کتابی من نوشتم با دو سال تجربه نشستم که یک ترجمه کنم بدم بیرون میگه این یک یعنی کتاب اصلا این کارو نکردم، حالا این آموزش ما خواهیم به شما بد من نگاه که کیس بیست پیش میرم کیس بیست یکی از نمونه های آموزش آنلاینیه یعنی چی؟ یعنی با نمونه پیش میام با نمونه عملیاتی پیش می من الان شروع میکنم یک نمونه برنامه بازاریابی رو به شما نشون میدم به اسم مارکتینگ پلان معروفه هر کدوم از شما این دوره را بگذرانید باید استاد مارکتینگ پلان بشید یعنی چه استاد مارکتینگ پلان بشید یعنی ایشون حالا آقای که پیمان کار ساختم میاد به شما مراجعه میکنه میگه که یه برنامه بازاریابی برای سال آیندن به من بده یا ایشون قناده میاد به شما میگه که آقا شما دوره ام بی دیگه یک برنامه بازایابی سال نورده چه به من بده خانم باید این هنر و مهارت داشته باشی بریتی قنادی ایشون همه چیز رو رو بکنی دو روز هم قنادش رو یه پرسشنامه‌ای تهیه کنی حالا توضیح میدم بهتون مشتری‌هاش بسنجی، آمار بگیری، اطلاعات بگیری، خودت بشینی اونجا اصلا پشت قنادی وایسی، ببینی چیکار باید بکنی، چه اتفاقاتی میافته بعد دو هفته، بعد یه ماه بگی این برنامه بازاریبی سال 94شون شماست این مهارت جز مهارت سکیلایی که یک کسی که دوره MBA می‌گذرونه اصول بازاریبی رو داره. حالا دوره‌های دیگه‌تون نمی‌دونم با چیه. هر دوره ای طرفت بتونه اون سکیل داشته باشه که این رو هم میتونم بدن. من آن بتونه شروع با هم کار میکنیم شروع میکنیم به توضیح دادن حالا خواهش هم از شما اینه نگاه کنیم اگر خودتون بیزینس دید از بیزینس خودتون هم یعنی یادتش کنید یک مارکتینگ پلنه سال 94 تون رو آماده کنید از بیزینس خودتون از حرفه خودتون از سابقه خودتون حالا مثلا خان مثلا نیما میگه من تازه میخوام شروع کار بکنم خب نداره شما اگر آشنایی فامیلی کسی دارید که بیزنسی داره کسب و کاری داره کاسبی داره, کاس داره، یا از دوستانی که داخل کلاس هستن باشن آشنا شدید با کمک اونها شروع کنم به تایید کردن شما خانم خودتون معرفی نکردینتون خانم مهدیه فرخساده هستم ایشون ورزشی فعالیت هم زمین ایشگاه زدم، من همین پسش الان دیگه آرازه تو شرکت فیلیوس و کارمند همین تواله. خب حالا کیدان تو ازم ده این کارمونه خب هر کسی باید بتونه توضیحاتی که من میدم چیزهایی که نشروتون میدم نمونه‌های عملیاتی، نمونه‌های اجرایی برید اینجا به درد نمی‌خوره، اینجا تو کلاس واقعا خواهش منه که دوره MBA ماشینه شما یه ساعت اینجا تو کلاسی بعد 6 ساعت بیرون از کلاس تو کارت باید باش کار کنی یا ها نگی اینکه بری کتاب بخونی بر من بیاری پاورپوینت درست کنی بر من بیاری این مال دانشگاه هاست که اون هم هم استعداد کشی میکنن تا استعداد پاره کاری کنن واقعا استعداد بچهای ما رو میکشن مدرسه ها اونجوری شدن دانشگاه های ما اینجوری شدن من دیروزم دیروز محمدان سمیلا رو میلیارد خیلی جالب بود برام میگاه کنید آزاد کشور اروفایی تو که سی رفته سویدیم سال گذشته ایدز رسوم به سفر آزاد تن کشور, آزاد تن کشور خیلی فری، خیلی راحت، خیلی آزاد اونجا اگر دختری بالای سن دوازده سال دختر باشه خود خود با در صحبت می‌کنید براش عید باه. هر جنایتی که سر حمام نمیشه سرش میپایین این قد آزادی اونجاست. این اونجا کشور راحتی کشور آزادن کشور ورقه ای ارز رسوم به صفر. شد. چرا کار کرد؟ چون برنبه دقت می‌کنم برنامه ی بازاری این کار داشت. برنامه ی بازاری برای این کار داشت. موفق شد. یعنی اگر برنامه عملیاتی برای این کار داشته باشید موفقش این حرف نیست پس هر کسی اینجا سهم میکنه این کییس کییس سازمان خودش رو یک مارکیم پلان شما باید پستکار این کار باشید دت کنید باید رسید بعد از این دوره مارکیم پلان تهیه کنیم نه مارکیم پلانی که بخش به کپی برداری بکنید نمیدونونه از یه جایی برداریداری نه هر کسی کار بکنه برف خودش رو کار نکنه بذره خودش شده من کلاسم اوپن بوک همین سن رو هر هر کسی هر کاری کنه خودش کرده هم بکنی و قائل کردی ولی میخوام خوام درگیر سازمان خودت بشی بگی استاد گفت اینو تهیه بکنم تو سازمان خودت درگیر بشی با پرسنل درگیر بشی با اونها درگیر بشی اینا رو سخت تهیه کنی آماده بکنی که در نهایت واقع بعد از این دوره میگی آره هر کسی من مراجعه کنه من مارکتینگ پلن میتونم تهیه کنم این مارکتینگ پلن شما. یا به کسی نرید مراجعه کنید 15 میلیون بدید تا یه مارکتینگ پلن تهیه کنه حالا این مارکتینگ پلن خوب اگر برای شما تهیه کنه 15 میلیون تومان می‌گیره ما میگیریم من سازمان ما می‌گیره حاضر هستم باز قیمت رو پایین بیارم یا حالا دور فروش نمی‌دونم که با کی سیلز فلان خوب 25 میلیون تومن برش سیلز فلان همشه برنامه فروش این مارکتینگ پلن نه اون دلیل ام ات لندنی، ات لندنی هستیم، ات چی؟ هستیم. ات توریزی، تابلوی تابلو، کمپینه تابلوی تابلوی تابلوی تابلوی تابلوی تابلوی تابلوی تابلوی خب ارزم خدمت که شروع مارم مارم. کنیم. ن ختمت شما را درگیر کنیم با اون وجود دار ماشین ماشین توزیع من از روی شما با دیویسیش رو دارن با کاموکمتی دیویسیش رو میگید راحتیم چون همین میشناسن خود رو خوب نماخنید، اون چیزی که شما باید محورت این کار داشته باشید، این هاست من میگم از یک جا مفاهم رو گرم، از یک جا نمونه لتونش رو میدم و هر جلسه من سه چهار تا برقش دور میزنیم و به جلسه آماده میکنید میادید یادکنم اصلا یهو ده تا فرصت بدید ما هم آماده می‌کونیم بعد یه خواهش دیگه ازتون می‌دارم خواهش من اینه که همون کلاس 12 نفری برسه نه نو. نو نو نفر باشه <تصفيق> نفر هست اگر ده نفر هستین گروه های دو نفره 5 تا گروه دو نفره با هم جوینت بشید هفت دو نفر با هم باشید چیزهایی که انجام دادی رو با هم شیر بکنید. حتما این اتفاق بیفته. هم گروه باشید هم انفرادی. مثلا شما برای سازمان برای قهرمانی دی کاری کردی، با ایشوت مثلا تو باصیر، یا اون اون خانوسم باصیر اشتغال زایدی، برنامه‌وازری بمولکره با, با هم جوینت بشید. این جور خوبی داره. چیزهایی که اون دیده شما نایگه، چیزهای شما دید اون نایده. با هم میشه در اون کار انجام بده. خب بس، مهارت تحت و برنامه برنامه‌وازری این محارت باید شما داشته باشید به <تصفيق> این برنامه بازاریمی دارا چه جایی به شما بفتن رفت داری امیه برنامه بازاریمی چیه و چه چیزی هست و چیا باید داخلش باشن را هم بکنید این کار بردید یعنی اینکه توی بحث اصول بازاری بیتی دوره‌های ام بی ای این این مهارت به دوستان انتقال میدن به چند تا دلیل یکی این که دقت کنید منابع شما محدوده شما جز کاسبایی هستید که مثل مثلا شرکت پاکستان که ۲ روز پیش من بود 16 میلیارد طرف چک گذاشت جلو گفت میخوام تبلیغات بکنم یا مثلا مثل و آقای پدیده، سال گذشته سب و سی ملیار تومن بزارش جلو با. بکنید، با بکنیم. تبلیغاتی اینقدر منابع ندارید، آدم هایی هستیم، با منابع محدود میخوایم کار خودون رو خوب بیش ببریم خب چون منابع محدوده، زمان محدوده، من باید برنامه باشیم متناسب با کار خودم، با استعداد خودم، با طوالمنده خودم، با کارمنده خودم، بتونم یک کار یه برنامه که شباشم برای سال آینده، برای سال 94 هم یه برنامه بازایی برای فروش روش داشته باشه. حالا بازایی من فروش رو کنم نمیده. امکانی کسی مزید سازداری منامه شد یه فرصت های محیطی. حالا یه سال، برنامه بازایی بوده هست چند وقتی بار تغییر بشه؟ سال پس هست سال, سال برنامه بازایی برای سال آینده و تغییر بشه. که باید آماده بشه قبل سال. حسام که ممنون فروردین برای برنامه استن مشخص آماده بکنم. <تصفح> <تصفح> <تصفح> برنامه برنامه با اینه که من آماده اش کنم. و چی؟ پان. اینا اول سال اول سال شروع و تهیه برنامه واژه‌باری سال آینده. چون از فروردین که شما برنامه واژه‌باری سال 94 رو شروع میشه هی ارزیبی میکنی اینجا اشتباه بوده. برای سال آینده حواستون باشه تا نیافته. برای سال آینده من چهار تا فولشال استفاده می‌کنم. استخدمه اشتباه بوده برای برنامه آینده و برای سال هم که این کار با این سبک انجام بودم وازمی میگیده یکی یکی این تفکر آینده سیستمی به شما میده شما تا دیروز سنتی همه چیز رو پیاده میکردیم هدفی نداشتی همه چی رو آمخته میدیدی هر دفعه یه اتفاقی اتفاقات برای اتفاق برنامه چیز شما را رار بیشی واردی یا شکل تبلیغاتی و شما مراجعه میکردن گفتم حالا من آگهی دارم روزنامه دارم آگهی بلد بزنم گفتم آدم پول دارم بزن پول نداشتی میگفتی نزن اونجا دیگه شما که به شرکت تبلیغات ختم میکنیم بیفولانی بعدای برنامه بله من وارد بیرون من از این قد از سه درصد از درآمدم میخوام تبلیغات بکنم با هم کار کنی یا علی بیا جلو آگهی بزنم. اگر این آگهی تو مشتریان منو به شش نفر رسون، سه نفر از این مشتریا، پنج نفر از این ها مال شما. هر چی قرار بود. بسن مال تو. هزینه اینجوری کار کنیم شروع کنیم به اینکه برنامه با بمونه. شما اگه برنامه ریزی میکنی بر پرسنلت. اونها نیستن که برای شما برنامه ریزی میکنن. دکتر میده خیلی مواقع کار ما رو میکشه و آدمان رو انجام. یه موقعی ما چقدر کارهای می خب دو گروه ها هم وجود داره یه موقع آدم میافته تو کاری میگه دیگه افتادن. باید انجام بدن. نه این مارکتینگ اینو رو شما نمیده شما که کار هول میدید؟ شما که دیگران هول به دیگران هدف میدید به بازاریا هدف میدید به کارمنداتون هدف میذید به منشیتون هدف میذید شما در روز بعد 15 تلفن جواب بدید این که بدید از این 15 تا باید بتونید 4 رو جذب نفر رو جذب یا سال گذشته رضایت مشتریان من از شما ده, ده درصد بوده، امسال باید بشه پونزد درصد واحیلا اخراجی مثال بید. شما که باید به دیگران ایده کل <تحصف> سیستم های شرکت همه هم میشه کنار همینگی قرار میگه و دفعه از میشه، استاندابده کارتون مشخص میشه ثابت کرده انسان هایی که تر دارم، ندارم درساله موفقیت آدمایی که تحقق دارن، برندارم بیشتر از اون کسایی که ندارن. درساله کسایی که به هم مرزی میکنن، برای ساله اینداشون بیشتر از کسایی که نیستن. توش ما الان تسمی میگیم که امسال رقم زنیم. مثلا امسال من 600 میلیون دارم داشتم برای ساله میگم من باید خودم 900 میلیون دارسم. شروع کنم بهش برنامرزی کردم. درساله موفق شدم 900 میلیون نرسید ولی به 400 میلیون میرسیم. تا اینکه کسی باشه که بگه خب معن صدق صدق من در حالم صدق لاینام خدا روزی هر چی پیش وایب خوش وایب میریم میشیم. درصدم معنفلتون کسی که طرح داره برنامه داره هدف داره بیشتره. پایانه که دانشگاهی من بود. فروشنده هایی که میرفتن داخل مغازه ها سفارش بگیرن. میرفتن داخل داروخونه ها سفارش بگیرن. اینها رو دسترانی کرده بود. کسانی که قبل از ورود به مغازه، قبل از ورود به داروخانه می گفتن که من می‌خوام تو این داروخانه تو توی این مغازه مثلا سه میلیون فروش داشته باشم سه میلیون سفارش بگیرم و کاشگند داشتمجا با کسانی که حالا دی می رو میرییم چی میشه ت خیلی جالب. در سال مفقیت اون گروه هوور که از قبل برنامه زییم کردم عدت مشخص می چون نم چون اینجا تو برناازیشون خواهم گفت هدف و کمی و کیفی باشه ما دو رو مدیر داریم حتی کنید دو نوع آدم داریم یه آدم ها فرایند مهبرم یه آدم ها نتیجه مهبرم حتی مدیران ما اینجوری اصلا شما سما توی شکل کار کردن بعد ما مدیر صادت میکنم که خود توی سما شما چی کار کردی؟ باز خورده تا ببینم چقدر درآمد کس کردی برای شکل نتیجه دارم نه شما پروستادس نداشتی، کارما نداشتی، اخراج. چسته فرانه تا. می خب شما سه ماه اینجا کار کردی، گزارش روزانه کو در روز چیکار کردی چند زنگ زدی از نام شما با کجا ها تماس داشتی؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ افتاد به من توضیح بده توضیح بده اگه خوب بود بگید تا تو هست سه ماه آزمایشی هستی اگه نه اخراج میشه. ولی خوب اینه که من هم فرانهوار شما نتیج مصرف است هم و هم نتیجه است. فقط برای بذایم به همین. من هم نتیجه رو باید عددی نگاه کنم هم کیفی نگاه کنم. فروش زیاد هنر نیست. مثلا وقتی یه سری آدمو با باهون مراجعه می‌کنم میگن آیدی که شما میگه کاری بکنی که اه مثلا مشتریان من 10 برابر باشم میام آره برادر میتونم کار بکن چون که جوابشون بدی. مشتری بریز اینجا. دو نفر رو بگیری، سه نفر رو جواب رو چه چهار نفر محل بهش نذاری، تلفن جواب بودی، خسته شدم آقا بله به فرانوزی مشتره ناراضی طولی، ناراضی میره به دیگران میده، قانون قانون، یه مشتری راضی شما رو میره پنگ نفر معرف میکنه یه مشتری ناراضی شما رو میره نفر معرف میکنه تو ایران کسان بدترد، خدا نگارد تو ایران عدس کسی ناراحت بشن توی وایبر، توی اسمس، یه دفعه به هزار نفر میفرسته به پونست نفر میگه، ما عادت مونده انتقال ناراحتی خیلی بیشتر از راحتی هاستم، خوشحالی هاستم کسی که دقت کرد باشید، ازاداری های ما شکتر از عروسی ماست یا اونجا ما از ته چهار روز عزاداری میگیریم، عروسی یک شب دو سار، سه سار تناشت نوراحتیا رو بیشتر انتقال میدیم اونجا سوم میگیری هفتام میگیری چهلم میگیری عروسی یه سالگرد میگیرن حالا کشور فرانسه برعکس ما اینجا برای اعضا هامون اینجوری میگیریم حتما مطالعه کنید شرط دوستان راهنمای اونجا برای عروسیشون طرف یه ششم میگیره آره ششمین روز عروسی میگیره یک که فرانسه کل جالف رو برایم رو این روز سالگرد میگیره یکی تونه ماه میگیره در روز سالگرد میگیره بعد گیره می سالگرد شادیاش رو بیشتر میکنن، ماهان ما به انتقال ناراحتی بیشتر ما اون رو داشتیم مثلا من مشاهره شرکتی هم آب لیمونش یک پیچ پیدا شده اتفاق, اتفاق؟, اتفاق این همه آبلیمو دارم میرن درشون میخوره این مرد ماره یه پیچ از اون بالا از اینجا گفته داخل این رفته رسید دسته اینو میگن پرچم چی کرده پیرانو اسمان, پیرانو اسمان, پیرانو اسمان, پیرانو اسمان کرده حاضر زندگی شرکت میگه یا 20 میلیون به حسامن من می کنید اینم شماره کارت یا اینکه آقای یازرلو بیست و میرن تو بیست لطفی ده هم این می‌خواد کار میخواد میخواد خدا کنه 20 نفر میخواد به شهست میلیون نفر این حالا مورد هم ما مورد هم ما داشتیم به شرکتی که داخل پنیرش چیزی پیدا شده بود خدا نخی بود, نخی, بود. نخی بونی بود چیزی بود که پنیره پیدا شده بود اومده اون در شرکت گذات راستش من خیلی شرکت را داخل این نخه بوده. اصلا بهتون در اون کیه؟ سریع به را, را, را, را, را, را, را خیلی خوب بگیر به این آقا بده بود خیلی من رتف کردی نصف درگر کنه خودم گفتیم ما ایرانی مشکلمون هم ما ندیم ما همشه قانون داریم بگیر دست کسی نارتی برو به خودش بگو صداش کن منم باید مرد این کار باشم زرفیت داشته باشن که فلانی اومد به من گفت امرووز شما این کار کردیم من دستت ناراحتتم بیا خودم بگویم ما دست کسی ناحت میرییم ده نفر دیگه میگیم. میرم به همکارش میگم. میرم به دوستش میگم مرد نیستیم ویسیم جلو میگم آچون آذم هم آدنسال کنم. هم کن. آجون نگاه کن هنروز شما به شیرا می رفتیم شما این کار کردیم من از ناراحت شدم خواستم بهت به خودت بگم مییم به ده نفره 20 نفر مییم انتقالت وجود دا خب پس این فراخت نشمارد میکنم ما که تیبیل کمک میکنم شما خودتون درمون میزی کنم خودتون کار انجام میدید احتواستیزاتون خودتون مشخص کنید آمادگی داشته باشید که هر روز کارتون بیشتر بکنن و آدم های خوب برای این کار بگیرید یه نکته را داشت به کاغذاتون دقیقت میدید من آدم خوب آدم خوب کارمند خوب فرد توانمند هر جا دیدید بگیرید نگید من نیاز ندارم من نیروام کافیه من که بستمه همیشه کاسب هرفه اینه یا دنبال جایگزینیه یا دنبال توسعه هست اگر فرد هرفه باشه پولش از شرکت شما در میاره. نگران نباشید بازاریا خوب باشه کارمند اگر خوب باشه پول پول خودشو از شرکت شما میکشه بیرون اگر ای باشه اصلا نگران نباشه من حرق اینو به دوستان گفتم طرف اینو هر ای کوشش کرده الان کارمنداش پرسنلش شدن 250 نفر ولی اندازیه 250 نفری که سفره باز کرده بیزنسش توسعه بده کرده تا دو سال 6 نفر بودن الان شدن نفر میگه فلانی من تو مترو تو اتوبوس این, این حرف شما رو گرفتم تو شرکت مثلا میدم شرکتی من موش فرصتی که ایش رو جذبش جذب شم میکنند. میبینم یه جایی تفاوت حساب دارش عالی. ناراحت میشه از اونجا، ناراضی میشه از اونجا. این سیستم امیکایی آن ناراحت نیست، از اون زیاد مدام مطلع هست ولی کن. ما دوتا سیستم داریم تو دنیا. امیکایی ژاپنی. دوتا دو نو بازاری وجود داره. دو نو بازاری وجود ژاپنی و امیکایی. دو نو بارمانی بازاری ژاپنی و, و امیکایی داریم. امیکایی روحیش ما از کریستو کولوم گرفتن. کریستو کولوم چیکاره بود؟ کاشف کاشف و صرخ پستا صرخ پستا بیدی کشون چیه؟ فرصت ترم اصلا این رویه وجود امریکایی هست چند وقت پیش دانشگاه فنگی مهندسی سمیلی ها دانشجوی کامپیوتر کامپیتر اومدن من نشون میدم با موم رو موم مدلک مستند فران شرکت امریکایی کامپیوتری امریکایی من گفته بیا من اینقدرم بود رو بودم برست میکنم بعد این آدم کیه؟ موخ آیتی هست که فرنیم پیدا با کار هم شما را که شکلت های امریکایی رو نگاه کنید؟ مهم نیست مدیرشون ایرانی هنگیه کیه؟ خوب باشه میگیرم تویوتا تا حالا 63 تا مدیر فروش بزرگ کرده پرورش شده امریکایی ازش دازده اماره جاییدشون نگاه کنید؟ بگه ماه 63 تا مدیر رو. پونزهتش رو فرد دازیده، چرپنش رو فلانی دازیده، وردشتا میورم. زیره پا تا میکنن، میورم به خود رو. کاشف و فرصت هم. این روی، اینا محفظند، نام برند، اینا, اینا چی جوری هم پرورش میدن. مثلا مدیر فروش شد. مثلا شرکت ژاپنی شما نگاه بکنی، میبینی کارگر انبار بوده. بعد شده کارگر خبر تولید، بعد رئیس خبر تولید، بعد شده فلان خونا، مثلا اینکه 19 روزه هستم این آدم رسطه به این سطر اینا ما آفقه ما اولویت ارتقاء آدم ها، اول خود سازمان هم فرام میاد بیه که برمان مدیر بازرگانی پیدا کن یا برمان مدیر بازرگانی معرب کن میدم شرکتش، میبینم که منشیش قابلیت استعداد و توانمندشو داره مدیر بازرگانی بشه میان فرنا مدیر شرکت خود مدیر بازرگانی نه 10 درصد آموزش دیدم تمام دوبر مدیر بازرگانی نکردم سیستم جاکونی داخل شرکت خودت اگر آدمو حسابی نکنی با دفادار میمونم دفاعدارترم هم اینکه خارج از شرکتی که گیر بیایید تا 6 ماه زیر آبشون میزنن حزیتش میکنن نمیذارن کار بکنه چون جدید اومده قدیمی ها میگن فلان این حواس اینو جمع کن من قدیمی تر هستم مثل خدایان سربازی دیگه اما ریسانس رفتن دو بودم دیدم یه سرواز خطیه‌ها اما های جناسروان کار انجام بده من بله؟ چی گفتی؟ چی داری من دستور تا پای گفتم. همان من قدیم‌تر از تام من نگاه کن من دو ماهاتی خدمت‌ها تمام خود که هدام تو ادارات هم اینجوریه شرکت شکطان اینجوری تا اون ادا جای بیاد جا میافته بزرگ بشه هضمش بکنن طول می کشه از خود شرکت بکشیم بالمون بالا خو ما داریم میگیم مصرفی که داخل بخش ها وارد بشیم مساله تا برای برای مجاوره هستی بهتر بشه بشیم خب هدف گذارت برای بازرگانی هدف ها مشخص بشه برام سراغ در آن معنی برسد هدف مونه که نقشه راه بشه کنترل نظارت داشته باشیم برکاریم وقتی شما برنامه داشته باشیم از دیگران مشارکت میگیرید. میای یه روز توی شرکت بگیم دوستان عزیز ما برنامه بازاریوی سال نور اون در اومده اینو بگید مطالعه بکنید به من بگید که ساله هره چی کاره اید به آبدارچیت میدیم برنامه رو میگیم برنامه رو مطالعه کن بگو برنامه سال آینده تا من بده ما که می‌مالیم این رو بکنیم مثلا از نیروهام بگیم آن برای سال آینده چه برنامه‌ای داری ما برنامه وقتی میدیم می‌دیم می‌گه تو سازمان چه شرکتی به منشی شرکت هم میگیم میگم اینو مطالعه می‌کنین برای سال آینده این شرکت چه هدفی داری اصلا چه حقوقی انتظار داری چه انتظاری داری چه کار می‌خوای بکنیم برای سال آینده این شرکت بنویس من توی ده خط بده تو جاش بذمتون توضیح مشارکت منابعی که وجود داره رو من به کار می‌گیرم چیزایی که هست، منابع کافی داره، میکار تک میکنم برش، هزینه میکنم، مسئولیت ها تقسیم من نمی کنم امکانات هم در نظر میگیرم با همه که وجود داره کار انجام میدم همین مدیران بازاری باید در برنامه بازداری با استاد باشه باید به خود انجام این من... آقا. انجام بدهید بعدا دوباره ریزش را بهتون میدم ما دو نوع برنامه بازداری میدار یه نامه واسه محصول داریم برای من واسه سالیانه داریم مثلا این دوست من میخواد شیرینی جدید تولید کنه برای سالیانه میگه برای این شیرنی جدید من برنامه بده یا ایشون مثلا تو بحث کاریابی میخواد سالیانه یک خدمت جدید رو به سیستمش اضافه بکنه میگه برای این خدمت جدیدم میخوام یک برنامه بدم یا نه برنامه سالیانه است برای کل سالتون برنامه‌ریزی میکنید هفته اول سال 94 چی کارم؟ هفته دوم چکارم، کارم؟ ماه اول چقدرم؟ ماه سوم، ماه چهارم برنامه سالانه سال اقتصادی. یعنی اینا میتونید خودتون آنالیز بکنید، مشخص بکنید. خودتون می آنالیز بکنید که درو در میخواد روی مثلا میگم آقای شیبانی مثلا تو بحث خدمات مثلا نرمتساری یا سخت افساری یا امکاناتی که داره یا میخواد ایده ای که به مدیر بده مثلا خدمت جایی ایران آخوام اضافه بکنم برای خدمت جایی میخوام برنامه بازویی داشته باشم و یا اینکه سالیانه باشه و کلیمون هر جا اختشه هر دوتا شما هم کنم و شرکت میدانم برای مسلوط همیشه قبر از پروژه انجام میشه با، چون با ناشناقه های زیادی سرکار داریم. باید با تجربه آدم با صحبت دیگران، با چالش دیگران درگیر باشیم ولی برنامه بازاری سالی یعنی رو من یک سال نوشتم میشه یا بعد چند سال نوشته میشه از اول سال شروع میشه به من این کار رو بتونیم بیدم باید مطمئنه آدم، دیگران مزید نماشی خب میریم که ساختار برنامه باز ساختار رو خوزید. اولیم سیگه برنامه وجود داره؟ اینه این ساختار دو با کنه برنامه بازید. تو برنامه بازی اول باید خلاصه مدیریت بیاد این یعنی همچین جدی رو شما باید برای برنامه بازریفی داشته باشه این صفحه اولیت میشه دیده میشه؟ بله مارکت این پلند، عنوانه تر مثلا کاریابی دیپس شرکت رهیافت مثلا می نیمیسته موضوعی <تصفيق> کسی که این طرف آماده کرده اگر هم خواهش میکنم برای بازاریابی کس دیگه ای آماده کرد اسم خودشونی چند نسیم اسم مدیر آمه موسیقی با این دا فنگی خاموش کنیم رو به شما می خواهد کنید بخی برنامه رو این که درمی سیاست کاریتونان می خواهم فکر راحت باهم ثابت که من رو دارم نه خیانته نه دروغ چیزی نیست چون ما دیدیم مثلا من مدیر آمده شرکتم تر بازاوی رو این آقا آماده کرده قبرده بعد زیره شمشته نامخانوی تحییباننده تر خانه مثلا زنوی بودی شما؟ زنوزی بعد میگن که ای بابا ترخ و کسی دیگه ای داده کی میخواد این عمل کنه کی میخواد این رو اجرا بکنه بگی مدیرها ها حتما خودش باید اسمش اونجا به یا اگر شما برای مدیرتون آماده کردید ازش خواهد شما درست من ترخ آماده کردم اسم شما اینجا باشه چرا چون اثر این کار بیشتر کارمند بیشتر با این سیستم کنار میان ایران ما اینجوری اینجوریه شاید کسپریدلی واقعا اینطوری نیست همه بهتر هم همیت به احترام میذارم ولی توی این مملکت باید اینطوری باشه مثلا علام سروس پای کامپیوترو مزاخری از مدیران ساور سروسیما هستن یک تا از فیلم فسیل من کنه و تاریخ که داده بود چون برده بودم تو سینما یه قسمتی بود که اون سی دی رو کلونپ کرده بودند و تاریخ زدن و ساعت زدن کرده بودند تغییره یعنی دیگه بعد از این اگر اون تر رو ما گمم بکنید پردش رو کسی پیدا کنه مرجای قضایی میتونه با کنه که ما اونجا یک مکانی ثبت کردیم مثلا ما رو کسی نمی‌تونه ما تو واسه بهتر این بهترین ما آماده کننده تا... کسی باشه که تحصیل رو سیستم میذاره توی این مملکت ما داری کاسبی میکنیم باید قانونهای این مملکت رو یاد بگیریم باید قواهد زندگی این مملکت رو اینجا من دانش میرم با استاد و کتاب کتابی نمیستم. مثال دارم یک استاد اول باید اسم باشه بعد اسم تو باشه کشور اروپایی شما بری با استاد کتاب می نمیسید نمیرم میفهمه میدونه چیه بردی استاد اسم تو باده باشه اسم من الو تو پایان نامه نویسی هم من چون تو مدرسه بودم به سه که بسیاری سهش پسر دکتر پایان نامه آماده میکنیم. آستاد راهنمای بالا بد دانش، اونجا برعکس دانشجو بالا آستاد راهنمای پایین. حالا این ابتدا اثرش رو به دانشکده کدام میکنه؟ پس صفحه مثلا فیروهم آماده میکنیم بعد یک آموزش داره، یک فیلدرس من آرمانموارم باید شد فیلدرس برداشته اش برای نوازش میتونم. اولی چیزی که دروا ماکتینلند باید شما بدهید خلاص مدیریتی خلاص مدیریت رو من می من نمونه میارم خاطر اینکه از نمونه شما را حت میتونید مثل این در یا مشابه این آماده کنید یه مقدمه‌ای این مقدم را میکنم بر شما. در این بخش به ضمنی متن فشرده این طرح حاضر، دلایل تهیه طرح و اهداف تهیه طرح مورد سودی کربن اشاره نمایید. همچنین دلیل تهیه اهدافتون بر موارد استفاده و, و کاربرد اشاره می‌کنید. تولید خودرو 206 در سال 1980 در ایران آغاز است و از آن سال تا سال 1384 رشد قابل توجهی داشته است. البته دلیل تهیه اهدافمون و و مغار رو دسته بوده کار بودشید این ستار رو باید توی مقدمه شما بیاد. اگر دسته آننده این ستا چهارتا سفر آماده کردید، اینان داخلش بیارید دلیل تقیه این پروازهایی برای فندادی اونا و برای تمامکاری اونا و برای شکلت شما یادند هم؟ صورتون هم؟ برای برای آفارو شهرم اسم شکلتاتون یادم ساره کس با کارتون؟ اینجا ن یا آقای مثلا شرکت رهگاه موسیقی این تر به ما آره، آره. نمونه بهتون که کسان داشته باشید که چجوری یه آماده حتی این من بهتون میدم دو, دو تنگی شما کردم، تو یه جای... حالا تر بازاری من به شما میگم یه اطلاعات مهرمان شما اون فقط مال منو، صفحه دسترسی میزادن که فقط من بدونم و مدیر بازاریام ببینم. کسی دیگه نواد بدونه. اونا رو حذف می‌کنید یا اون دو صفحه کاغذ رو برمی‌دارید از آخرش. اگر شما تر بازار شرکت‌های بزرگ نگاه کنید مثلا اگر 120 صفحه است، 20 صفحه نیست. این 20 صفحه فقط پیش مدیر عامل، فقط چون فرد هستید. میدم مطالعه مطالب می حتما حتماً اون شما بدونه که شما چقدر در اولی سال بوده‌شده. ذرافت ندارید بدون شما چقدر دارید فرض رو میگیرم سال گذشته شما 70 میلیون درآمدی من ماهی 300 toman دادی من دیگه کار نمی‌کنم تو این سکرتاری تسو نباید وجودش بشه تو کشورهای دیگه هم مارکتینگ پلن‌های اینجریه شما اصلا اگه سرچ کنید نمونه مارکتینگ پلن حالا کشورهای دیگه خیلی مثلا مکدونالد هم می‌تونید دانلود بکنید تو چا دیوندای، ارزان خدمش ها، فورد، همشون دارن فیلترنت مثلا، یکی ستد و ده است، ستی سفره است اشتر هم هزتر در رو, رو دیگه بود؟ بله، اون ستی رو هست میکنم رو او اینا، اینا از اون سیکرات اینا برخورش رو میدم دارم این هم اوشم بهتون میدن، این باید ویست هشت صفره است شده اون چیز که ما برداشتم, ما امی اصلا استار نکردیم که به ما بدیم من امی دانشجو همین رو برداشتم پیشون بریم توالی خواهدو دیویس شد تا سال خیلی خوب پیش میدم چرا؟ موسیقی. موسیقی. موسیقی. هنوز فهمست هنوز جنس از اصل بود، من کسی که مثلا داشته باشه زیر 84 عالی آشت آشت آشت آشت آشت آشت اصل 84 تا 85 در معنی بلوغ خود در بازار خردای رحمت میانه در ایران بوده. اما در اصل 86 میزان فروشان کم شده. هدف نویشانتر بازار برای افزایش فروش 10 درصد اصل خود ریسک باشه. همش باید عددی کار کنید. دقت کنید هدف عددی. در درآمد ما سال گذشته هر ماه من 1 میلیون بغ گرفتم 12 میلیون تومان بوده. برای سال آینده میخوام درآمد خودمو کنم 24 میلیون تومان. ماه 2 میلیون تومان درآمد داشته باشم. این هدف فقط باشه. این راحت ساده بنویسید هدف نشستی ممش به درد نمیخوره سال نده من با 6 تا مشتری کار کردم این 6 تا درصد رضایت درصد سودی که نمیدن انقدر بده امسال من میگم با 25 تا شرکت کار کنم با 25 تا مشتری کار بکنم از اینها انتظار دارم ان رشد داشته باشن تا مدام دارید یه سری مشتری رو شما میارید اسم مشتری رو میارید و انتظاری که ازش مثلا سال گذشته من سال گذشته مثلا با آقای مصری کار کردم آقای مصری من 10 میلیون خیر رسونده. خودشون یک کاسبای قدیمی مارکتینگ پلان نداشتن ولی لاقل اینا رو میدونستان می‌فهمیدن مثلا میگفتن فلان سال گذشته من اینقدر خیر رسونده. امسان میخوام انقدر خیر برسونم. آقای مصری امسان میخوام به من مثلا 40 میلیون خیر برسونه. مشخصه مشخص کنفایی با عدد جایی داریم، اسم مشتری رو شما اینقدر از این آدم ها در یافتی شد شد یه چیز رو کنم آره خاموش کنم، خاموش دلیفت به طرح بازاریابی درصد کار اجرال رو شما میده 50 درصد دیگه‌اش بعد چه چیزی به دست میارید؟ اجراش می‌کنید، آفرمیه اجراش اجرای درست نوشتن درصد درصد بعدی اجراشه. حالا اون اجراش تا تاپیک تکنیک داشته باش، درقش داشته باش، تاکتیک داشته باش، استراتژی داشته باش. اونورا بچل کردن، من بعدشا شما خواهم گفت. بخشش رو شما خواهم, خواهم پرفکت نه، واقعا اینجا بیان کرد، گفت تو فرصت کنه. یه دواره یه مارکن بلند دانشگاه هاوروار 120 ساعته اینجا مثلا تو 20 ساعت مثلا دانشگاه تهران ما میگه بگید و ماهان مثلا ما میگه تو 16 ساعت بگید اونجا دیگه کاملا با تمام جوزیات شروع کنم به گفتن منم بهتون میگم میگن بقیه اجرا, اجرا تکنیک های اینجرایی هم کنم او. خب بعد میسیم به کجا؟ به مقدمه که خلاصه مدیلیتی می میشون توی مقدمه معمولا اینا رو سر کنید مجرد پس کنید. آخر اگر بالا باشه این چیز دیده میشه بزرگش, بزرگش اون پرده بالا باشه نور میخوند تخته, تخته نکاسش خشم گیده میشه الان قرار خوب شروع چیه؟ این چطور توسعه خدمتتون چیه؟ اینا دائما دیاختارشون چیه؟ می‌خوایم البته من از اینا این همسانی. داخل اون سهر هست، بر شما. اگر کسی شما خود مرکب ترمان بدید باید بیرونم مشارکت با. هست کنید این توی موقعیتی تزی تلی موقعیت که بیدارانی، چیز را باید داختتیش باشید حسیگرده می نارد، بشرایت بهت زار اول خوان داشترایی، رهندان توی چیه دوروبری از اون مشناتون، چی خوارم، جردی کسی کار را یکی باشید شما به چشکل این از باید این سی بیرونس رو در باشید؟ چیزایی که اینجا نه نوشته من بهتون میگم کنارش یادداشت میکنم سلام ایمان بچک کنم بود که باید. این جوزار ماستان به شما میدادن شما کنار اینا مطالب که من میگم اینجا نیست تو یابداشت فهی فهیلتر این میگم چونتا هستش توی فایلی که بایداشت بله این هست دوستان اگه نیستی میخواد من دارم چه ها کنم اونجور برایم باید. باید. بهترش بود بهترش بود رین میگهم که بعد مطر کنم میگم کن قبل داشت بهترش این ولی من من یه آدم میم خاان ج ساکررس من بود یه آدم که 20 درباره که بهتون درس میدم مطلب می این از عادت خودم انقدر دوستتون دارم، دانشگاه خودم انقدر دوست دارم علاقه مندم پیشر بکنم یا بترم از پر قلبی خودم از برده. آتفی خوادم 20 فرور سی برای که کلاس میگم بهتون میگم واقعا آرزوی من اینه که مثلا میگم شما 4 سال یا سه سال دیگه من ایمیل بزنیم زنگ بزنیم به استاد این دوتا چیزی ما شما گفتی من لفتم اجرا کردم این شد یه خانمی چهار سال پیش توی بسی من اومد خیلی جالبه پرورش عرباقه داشت کجا بندر انزلی؟ گرباقه چی که میخواد پرورش نید مونده بود این اصلا همین اصحرهش میاد سرکلاس کنم پرورش گرباقه دارم همین گفتم با برو مرد پرورش بده شطور پرورش را گرباقه پرورش شده الان توی سال کاری کرد که شوهرش رئیس کل شعبه بانک, مل... بانک ملی من در انزلی بود استعفادات از بانک اومد کار زنش الان صادرات میکنم به چی من خواهد من صبح از کشور سنگ و پروینا خواهی گرباقه رو میخورن آره ولی دوی ایران بس... کس گرباقه نمیخورن آره برشون ف... عجیب بود دیگه بلکه ساده کنه؟ الان پوستش رو داره ساده بکنه اسمانی میگه با پوستش کیفایی درست بکنم بس... که قیمتش مثلا دو میلون تومن یه نمون از, از اون رو من برای تورد بچه هم یه جشن گرفت دادم دعوت کردم با بود. اون خبه همه کشید. میکشید اصلا شما نمونان رو جهاز میتونید پس یه جد آره مثلا اشون <بزرد تصفح> چهار سال پیش توی کلاسای ما اومد کار کرد گوشت داد انجام بود الان لذتی برای از اینکه امینا سار بازارش ترنوبر مالیش یک کنیم ملیار تومم بود اجلنم. یک هم یک ساعت ترنوبرش امان. یک کنیم به قرباقه بود اصلا من میگم هم میخندم من گوشت ها ما قرباقه یک کنی ملیار ترمویر داشته باشه حالا بیرد داشته باشه ناخون قرباقه رو من نمیدنستم ناخون قورباغه یه ماده یه مادهی داره بلیه درمان یه سرطانی کارورد داره بعد ایرانی های اینا نمیفهمم ایران, ایران کچه ساده این ها این فرسته نیویورک خیلی برام جالب این که هم بیدم آرزو میدم مثلا این که میدم یه رو بهترون فقط دوست دارم 4 سال پیش سه سال دیگه تغییر شد به یک کمپانی که 200 تا کارمند داشت، 600 حال کارمند داشت. حالا اینا متنی می‌دنم، نه نوشتم. پس تو مقدمه اینها میاد تجزیه و موقعیت شما، محصول و خدمت شما چیه و چرا شما در این زمان موقعیت پیدا شد اصلا ما این جای دیگه بود. تو مقدمه شما توضیح بدید که محصول و چیه و شما از این محصول چه انتصایی دارید؟ این روزی ها تو داخل این رو منظوری می دهتیم بگم باید تفایید تو مقدمه عدد چیه چیکار کار می خواهد کنید؟ دلالش چیه؟ تنوازایی باید, باید, باید مشخص بشه اهدافتون مشخص بشه کارورت هایون باید مشخص بشه یخوه به یه بخش معرفی داریم معرفی نام و نشانی کمپانیتون باید اینجا باشه اتون بازم بگم تو ایران اگه می شما. کاسوگی خوب انجام بدید پیروه کمان شفاق رو باید مصحبت میکنم یه مواید آزم رو شما <تصفيق> <تصفيق> بس دقیق ننگیسید چون اداره مالیاتی میاد چگاه میکنه برای صرفتان نیقتون رو میگیرم آدرس توی من وزیف همین که اون بگم من نگم میگید دوستا کن یه ارزم خدمت شما که این سیاست سیاسه بخاریتونه باید مشخص بشه نام خودتون مالکین باید با های حوام حکم وزیر مختلف سنامی موادن جنابای مهاندس جواد نجم مختلفی مجامع اشقای ایران خود را نشانی شما تلفون سمت پوستی سایت صحبی معرفی بهش بریم خلاصه از اون چیز یکی اعلان ها بودن گزارش اینجا به شما گفتم و صحب دسترسش از امنیتی چون ترح بازاریوی هرچی داره و نداره شما رو داره نشون میده مثلا آیا لازم دار کسی دیگه بدون درمادشون چقدر نفره حتما نباید کسی بدون من چقدر در بیارم مهم نیست یا آقای مثلا مهم به کارمندش یا باجنه آقایش هستم بدونیشون چقدر در نفره ضرورت مداره سطح دسترسی منظورمون اینه باید مشخص کن که مارکت پلن ناکن تو سه سطح آماده میشه عادی، طبیعی مهرمانه عادی و طبیعی فرقش اینه. عادی شما سطح دسترسی رو جوری تنظیم میکنی که همه بخونن هم مطالعه بکنن که طبیعی مثلا فقط حسابدار مدیر مالی در جریانه چه امنیتی فقط من میدونم مثلا مدیر معاون مالی دیگه کسی دیگه اطلاع نداره دیگه کسی دیگه اطلاع نداره این سطح دست رو شما اینجا مشخص کردید طبیعی شما میدونیم ما کارمندای سطح دومتون عادی رو همه میدونم ما برای سال آینده هر واجبی با هم هم مطالعه کنن اَب دویچ شرکت شما مطالعه میکنه نظرشو بدید. بعد دقت کن ببین نتی که من میگم تربازبل اَد دیومر بد ها مطالعه میکنن نگاه کنید. میشه بر شما بگم آگه ما هم تو ایران کاسه بخاریم شما می تین کلاس چیزی آماده میکنی بعد می بری به کارمند من این آماده کردم نظرتونو بدید. یه احتمال خود آماده کردی خودت هم اجرا اجراش بکن. حالا وقتی میمیر که من اینو مقدمه شاملی کردم یک نظرشونو رو می میدی به همه کارمنداتون که نظرشون رو اعمال مطالعه میکنم من نظرم این بود بد بشه خوب بشه بالا بشه پایین بشه چون همه تو آماده کردید همتون متحد به اجرای اون میشید مشارکت؟ آره مشارکتی گفتیم که از خصوصیات طرفهاله اینه مشارکتی افراد تحریک میکنه میگه ای من خودم نظر دادم خودم دادم عجب این آقا من آدم حساب کرد مشکل اون اینه خیلی کسب و کس با کار طرف خودش هیچی آماده میکنه تحلیخ میکنه به سیستم طرف درسته تو ظاهر داره کار میکنه شما هستی داره کار میکنه همین که در شرکت میری بیرم خیلیش را خب بین فایبر چی داری اینجا که جرید دوگه ما هم سیستم اینجا باشی کار میکنه نباشی فرار میکنه در میرم تو ظاهر کار میکنه مثلا من یه من هر که دوباره کامپیوترشون شلوغ یا قفل میده امکان از کنم باعت... چرا میگن این فقط دورش شلوغ کرد که بگن نال پن چرا سر من, من شلوغه اصلا سیاست به بازی اینه کاغذ هر کاری دور خاص نمیده کامپیوترش شلوغ میมารن بهش کاری میگن چقدر سرش شلوغه بگه خودم انجام میدم هفته پیش بود که anyway. شرکت رفتم به مدیر گفتم که به مدیر گزارش آماده بیاره رفت داشتم که خودم آماده میکنم. گفتم برای چی نگفتم گفت خیلی سرش گفتم بریم سرش رفتم اون کاغزچی اسمش نمی دارم یه با کامپیوتر و ببینم خب میترسم بش کار بدم میگم واو این چقدر سرش خوبه علی تای محتوی کارشناس نگم چیه چی گفتم چیه چی من از زنگ دادش تماس گرفتم یادم نره اون چیه آه این کار یه ماه پیش بود یه آقایی این جنس رو خواسته بود مرجوع کرده بود که باید پیگیر می کردن آقای منتوشو گفتم پس این هماره گذشتش بکم کاغذاش رو یه کاغذ مون اینو بده اونو انجام بده اینو هم الان زنگ روزن بگو می فرستم باورت نمیشه توی یک ساعت هم همه کارا اینو جمع کردم میزش خلدت شد بعد ما این توتا رو مدیرم بنام آره واقعا این که در میکنون میگم سایتی دسترسی ما اکسید و تا آدم ما اونا نظر بدن، ایده بدن، فکر بدن که این کارو ما کردیم اگر اونا احساس بکنن که ما انجام دادیم خوشحال میشن و با اون کار میکنن اگر احساس و وجود نداشته شده مقابلت میکنم ساد اسم افرادی که قراره که تو جریان قرار بگیرن نیازی سکر بشه تو اون قسمت مثلا این ترگو با این افراک بالا سفت دنسوسی اس نهی بری برای خود مشخص میکن اس رو بری یک چیز فلانی میدونه من نمیدونم حتی این سفت سکت که ما رو آماده میشه مثلا شما اینجوری گروز نمیدی که همچین چیزی وجود داره گروز بدید تب خب من یک نمه هم بودون من نواد بدونم نه ما در وقت اپنی آماده میکن شما نظرتون به ما بدید نظرات جمعشه گرد آغر میشه بلی مثلا میگم حکمان نباید آبدالچه شما مثلا بدونه که شما ساله گذاری ترنوار مایی چگاه چون تو سال گودشته 500 مرم ترنوار داشته شما مایی 700 درمات ببینه پس فرقه از, از در مید. مید. کار در کار <تصفيق> <بزاری. تصفيق> خلاصه مدیریتی باید چی بیارد؟ بعد از اون صفحه مقدمه و خلاصه مدیریتی میاد این خلاصه مدیریتی چرا اول ما کنید میاد. چون مثلا مدیر عامه، این صفحه مطالعه میکنه فرصم نداره که سر بیست بخونه این را مدیر مدیرتون 20 سفر اکه نمیتونم هم سفر اولا نگاه میکنم یه خوبه رجاع کنید <تصفح> خلاصا مدلیتی در اون اینجا بارد میشه این بخش باید نکات کلیدی به مهم تر واضری به سال شخص و فروشن بیان شامل موارد زیر فرضیات تنیه تر واضری فرضیاتی که ها اون تر واضری وجود داشته بشه نمونه هم پایان رو برای اهداف تر واضری به مشخص هست میشه که ما از این طرح واضری چه هدفی داریم ما یه موقعی می کنیم بایگانی بکنیم موقعی تا باید باید باید موقعی یه موقعی تر واضری تو یه صفحه آماده میشه نکنیم مثلا من گفتم 20-18 صفحه 20 صفحه 100 20 صفحه الان باید من زمان بذارم نه مثلا شما یه محصول جدید داری. یه صفحه طرح واضری آمونه میکنیم یه خط خلاصه، دوم خط مشخص به سطح فروش هدف آخرش چه برنامه اجرا کنیم این باید اجرا بشه. بعد اگر اکنون هر چقدر صفحات مقطع لاتون زیاد بشه، از اجرای بودنش کندیشه. این کاملاً امکان‌دار شد. چرا؟ یه چون از پایان نامه‌ای ممکنه اجرا نمیشه. چون تو کشور اروپایی من بودم من چه سر کدام شکار؟ پایان نامه تو 20 صفحه یا صفحه. اینجا پایان نامش موزیل 100 صفحه نیست. حسن که لطافه تاثیری لیسانس با لیسانس را حقاً نمی‌فهمند. پایان نامه دکترا اونجا 25 سن. اینجا لیسانس پایان نامه می ده 20 صفحه. اون یکی آره. وسط داغرا مثلا نگام کنه برنامه من چقدر کار کردی شما. آفرین. حالا این تاره وازبی اونم کنه هر چه تر با عدد کوتاه‌تر، اجرایی‌تر. هی یه ماه زمان میذاره یه تر عواظه به آماده میکنه که 400 صفحه یک صفحه هم اجوان خلاصه اصلا چنون شما را خواهید خلاصه اجرایی. دیگه شما از 26 محصول مثلا گنده تر دارید خلاص مدر چنون آقایید یه صفحه ما آماده کردی برای شرکت بسید که هدف همون شما پس میشه خلاصه اقوامات برنامه کلیدی را پیشنهایی در تر به هدف هدف میزه که من میخوام 60 هزار دستگاه بتوشم 10 هزار تا دامین سخت بکنم 500 گیگ اطلاعات جذب کنم به برای 500 تا شرکت حسابدار پیدا بکنم با 300 تا قنادی میخوام سال کار بکنم هدف با عدد مشخص بشه، بعد پیشنوادهایی که خودت به ذهنت میرسه اون کسی که برای آماده می میکنه شروع میکنه به اینها را نوشتم، بعد نظر از حرمنده میگیره به یه مشاور مراجعه میکنه متدهای رو نگاه میکنه هی پیشنهادها و نکات خیلی دیگه‌جای طرز بازوش افساحش پیدا میکنه توی خطون چیزی که وجود داره چون حداقل خودی خط بده که دیگران با شما همراه بشن خودت نمیدونی میخوای چیکار بکنی چیکار چن تا چیزی دیگه را مدونم میخوای چیکار بکنی خودت چیکار میزان کل خزینه خزینه مشخص بشه بعد این کارت میخوایی 10 ملیونو خرج کنیم 5 ملیونو خرج کنیم 1000 کنیم بازار یا کاسب <تصف> <تصف> تا برای خودش خرج نکنه پیش برای خودت خرج کنیم از لباست، از سررسید، <تصف> از نمیدونم کادو، از هبیه، هر چی وجود باید خرج کنی باید. برای خودت باید خرج کنیم. ماش خوب برای خودت بگیری برای پرسندت برسی، هدیه خوب بگیری هدیه بدی، جشن تولد توی سازمانت بگیری مهمونی بگیری، مهمونی دعوت بکن تا برای خودت خرج نکنی چیزی هم برای خودت نمیان کارت پیزیت برای خودت باید بهترین کارت پیزت رو بزن ایمیل خوب داشته باشیم تلفن رون داشته باشیم مادیرامل یه شرکت، من چندس بودم. شیکاته بزرگ مدیر عامل شما کشتن، من کارتیش جان نک ایران سیل زاد دخلش بعد ایمیلش نوا کرد ایمیلش زاد اصل جون 2000 چا <تصفح> آم مدیر عامل نم. با این پرستیج با این اصل نمیدونم زنشه به قول طهرانیو زیدشه یعنی اصلش چی نمیدونم ایران سیل چی آدمی شو کد کد مسکود دیگه حالا 459 هم داره فروش میگم دو باشه هم این دیگه با است باید برای خودمون خرج بر خود خرج همیشه با جیب تو کادو باشه به خودم رفصم یه موقعی دارم. چون من خودم آدم اجراییم دارم نور با حتی صحبت ماشه هیچی استاده نایدم نکار شما راحت صحبت بکنم. چون درگیری کارم دارم بتونه یه موبایل یه هدیه یه کادو یه کار رو کنه که هیچ کس نمیشه این کار انجام بده به منشه یه داره بره منشه حساب های شکر اصلا یک دلار یه کادو بهش میدید اصلا رو دولاره هست نامه من هزار شد. نه من به خودم نمیشه یه رستوران پاتچی بود رستوران چینی هر تا منم کلمش بکنم حداقل مودرش هم من, من زنده کو بخیر هم برای توسعه بازار هم برای کاری از ما مشابه بگیریم رفتم دیگه که اینکه من اینه که هر دفعه میایم اینجا گیری میدم میگن گوشه رستوران این دختر خانم این پسر خانم از هم لب گرفتم، پول اونجا اومدان این کار کردم پول رو چیکار خودم میگم عاشق کی کسی من باظرس اینجاست که بازم بچا دعوتش کنم به مشاوره ما هم هست بیا رستوران ما گفتم این کادوی خوب برای خانمش نه برای خودش برای خودش چی نمیگیریم فقط کنم تاش هم براش نمیذارم یه کادوی خوب برای خانمش بدیم من کار دارم بعد کادوی هم برای خانمش آماده کردیم اومدیم با هم شام خوردیم صحبت کردیم ریفی سوت سوت بعد آخره مهمونی یه کادو در رفتیم مال خانمش مال شما نیست آقا ما, ای... داخل. آقا ما این کار کردیم دیگه تموم شد من خدا هر افت منظر میزنه هم منو در افتن رستورانش هم میگه چ... چی کار کرد دکتر؟ خلاص شدیم بخواهر خواهر خواهر باید خرج مکنیم ما یه نمونه شو بتونم دو هفته پیش بین دوتا عیاد بود دیگه بربان و قدیر نه. خب ما یه سازوان از ما بالاتر این مدیر مالیه مدیر مالی خب مدیر مالی به هر دستش مدیر مالی کرد خب دستش واسطره یه هر کس فکر تو راه رو یه پاکت خوش تقدیر و شدی سکه به آزادی که توی دستر اسش حال این یه حلبی هزار تومانی بود شکل چیدم بوردای چیه روش بود و جلوی که به همه میگافت من هزار تا ما این اینو به همه میداد من که خودم از جیبم گوشم بعد هم صد اصن نگاهش هم نکردم به خاطر اینکه اصن برام ارزش مادی نداشته نوع کادو ای آقا برام خیلی بی ارزش بود آمد. روز قبلش تو شرکت خادم دیدم کارمند و اینا قبلا چون تعطیل بود روز بعدش دیگه ایدقادر بود واسه من ما بمونیم بر کادو گفتم اردوش من ماموریت بودم ان شاءالله روز دوشنبه خدمتتون هستم خب رفتم بانک مجبور شدم یهو تابلو گرفتم گوشیدم تو کیم اون روز هرکی اومد منشان یک تراغل دادم باشونم این اثری که تو مجموعه داشت این ها. مرتب آمد روز چگه این تر، این پلان، این چی؟ حال برا من یه بار مالی داشته داشت. خب شخصی هم بود ولی اثرش توی کارمنده و توی بازده کار بسیار یا با اون حلبیش به اون رو ما هیچ راندفانی نداشته ولی خب برای خرجیدات اون خیلی مؤثر داشت. توی اینجور موارد داشت تو از فلان دفترکانو که هستگاری کردن ولی برادرش راستش نمیذاره یه سالی که درگیری این من ایشون دوست دارم ایشون دوست داره ولی این برادرش مانه یک کار شما خدمت دارند که اون کنیم گرفت می آدرس مانکار را دارش می بیار یه درست نداری ولی کنار برژه ویلاد در ردش بکن ولی یه بار بزا یه خرج رو بکنی تا آخر عمالت بعدش ما سر بیسر چیزی من یه خود شما رو, رو پاهم کنیم گیر, گیر. یعنی گیره اینه گیره گیره گیر کرده نمیم رانشتیه اینه واقعا ولی که بشه اصلا باید حضینه اینجا خرج بشه شما خالص خوده جای جا می رسونه عددو اینجا بنویس مطمئن مش ایمان بیار خدا می رسونه من میگم خدا آقا اونایی که معتقدم اونایی که اعتقاد ندارم من میگم انرژی هایی که تو ذهن شماست می رسونه همیشه حال کیفتون جیبتون پر از اینجا چیزا باشه نویددارم خیلی مهمه ایشون مثلا ترابل داده اون آقا با کمترین هزینه مثلا اون بر ما یک کیمش سرویس دفتر ما پول میشه داستانی براتون تحلیف کنم سال گذشته دفترم پر سرعیسی شد فقط که سر من اومد دفترم هم کاری با من داشت من سه چهر که سرعیسی رو دادم بهش گفتم برای دوست ساخت برای خودت مال خودت یه دن گفتم مال خودت قافل از اینکه یه دن گفتم مال خودت تو شما نگانه کردم رفت در من زنده گفت دایی دستت درد نکنه خیل شما هر سال اطمیلن یه تراغل میدادید هشت تراغل چی گفتی هشت من به شما تهیدی بدم چی داریم که پشت بیا چیه قضیه بودم و هشت تراغل برشتاق سریست فقط نرزده به این و در مشخص مانید این هم از دو مشخص قرار به همه میدی هدیه است به این یعنی میدی همه میدی به یکی نمیدی به یکی و میشه هدیه علی صلاح نمی نذاشته باشی نمی صلاح شو اصلا من نگفته دارم دوباره سعی بس وقت خاص من سعی کنم دور می نافتنم نمیخواستم کنم ها فرق اینا با هم مشخص باشه هدیه ارزشمند برای طرف نقدی نیست باش نه یه گل بیا گل ساده کادوسانم میگیری خیلی بعد میگوی چند نفرم به چند نفر بیدید. به یه نفر بودی بقیه نگاهمون چرا به عمر ما نبرد اصلا ما یه بانک هستم مشاور شرکتیم از یه بانک مبلغ 200 میلیارد تومان وام گرفتن ما هر وقت میخوایم بریم تو بانک من به نوام میگم چندتا تا کار اون بانک ما که دو اضافه میگیریم به همشون می‌گیم حدی خوبه ولی به همشون می‌گیم جالب به همین کار باعث شده کارمندای این شرکت هیچ چقدر صب با بانکبان نیستن هیچ وقت شما رو خود اونا هر کدم غوامیان کار رو انجام بدن کار هم باز این ک게ن حضرات نزینا یعنی نه خط بیسته خوب با هر روز تو ظاهر خودت تغییر اینجا بکن چی میشه پیرن درون قیمت حرکت رو بپوش هر روز ماشته سایکن بهتر بکن هر روز سگون خودت موطور بهتر بکنی هر روز به خودت برسی خزیش بکنی خزینه منظورم پول نیست. خزینه بدنی هم هست. به خودت اهمیت قائل بشی. هر روز ورزش به جسمت، به روحت، به فکریت. موسیقی که داری گوش میکنی خزینه بکنی سالی یه بار سفر خارجی برید. اینا خزینه منظورم اینه. باید بر خودت خرج بکنید. بر خودت خرج نکنی بر خودت خزینه نکنید. خزینه رو ننویسید چیزی هم نمیاد نگید من می‌خوام مارکتینگ اجرا کنم بدون خزینه که نمیشه. عالم مافتی کسی هیچ کاری براتون انجام نمیده. وقتی خزینه بکمت، خزنشو پرداختت میاد. مثلا من طرف 500 میلیارد برای سرمایه‌گذاری میکنه. یه سودی به سودای کارطونه می‌زنه، یه, یه مشاوری نگرفته. کارش انجام داده، دو سال بعد من زنگ زدم. میگفتم 2 سال پیش کجا بودی؟ آخه 2 سال پیش تو 500 میلیارد دلار خرج خرجی کردی؟ 20 میلیونش هم دادی به من. 20 ملیون کجا این کارت بود؟ که الان اینجوری گرفتار نمیشوری هم خود گرفتار که هم من گرفتار یا یعنی من باید از اول بیام شروع کنم درست کنم؟ خود کنار بذاری و یک جهای خاص خیلطه سوله این نمونه یه ای خودش ترخ و مجریه سوله با تحسیصات خودش به خودش هم خیلی به خودش که صوله که تموم شد برای بازدید که می‌خواستن بیانینی برای راهبرداری بدون جربسویی که تو صوله هستش برای ساخته اون وسط مونده. نمی‌تونه سربه سده در صوله خالص بکنه. در... <تصفح> بعد که... تو سقف رو بش گرفتن جربسایی رو هوایی خارج بکنه. این مشاور حاضر نبود بگیره که میشه مشورتی بشه که مثلا یه همون چیزی هم توش وجود داره. داره. <تصفح> من یه بودم. یه بعد خیلی ها فکر منم مثلا اون دل میاره برایشون مثلا فکران چون پول دارن پس همه چیز دارن کلم پول دارن بعد خب یه اکنالو من موارم از کسی با مشادرش بشم یه دو سه روز باش میگردم میچرکم میرم میرم همینطوری کنارش هستم میبنم کارش رو باش صحبت میکنم هرطور خونش میرم خیلی با. اثار خود میذاره شناخت من خیلی کمک میکنه که راک کاره اساسی رو ط من هم مشاهده چند از این مدیران و مطرح این مملکت هستند دارم باشه میکنم بعد چیم با من میمیندیمش که تو باید 20 ساعت ببیشنم اصول مدیریت داد بگید خصوصیم چی که بودی؟ هستا؟ من مدیریت که این ماشین زیر پاونم کارخونه رو نداشتم و رو نداشتم میشه گفتم یکیس برش کو فهمیدی یه روزی مدیر بازار می‌بیند این کارو بکنه اونو اینو به اونجا اون به این بزنه این کارو بکنه چکار کنی؟ یه گفتی؟ اگر یه روزی همچین کیس. این آه... نمیدونم بکنی. من بلدم دام من باله تو حالا به تعریف میکنم تو با مدیریت این ماشین رو نگرفتی منابع اولیه آخره احمد نجات ارزون بود هنوز تحریم ها شدید نشده بود تو منابع اولیه انبار کرده با منابه اولیه ارزون اینا رو تولید کرد گرون شد فروختی این ماشین رو گرفتی فکر نکن ادعایت بشن اصلا با مدیریت رو به نه اون خونه یکی داری میبینی. اون زمینی که چون میگم ب و زمین یک طرف شمال داشتیم اونجا کنارش اینو ساختن، گرون اونو فروخت زایی به این اونم فروخت زایی به این اینو ساختم گفتم راستین گفتم راستین آ ما که اونجا یک از پول داره فکر کنم اصلا دانشمند ها حاضرن اصابت دیگه فکر پول همه چی براش میاد این زفته دیگه نمیکاره خب پس مشخص میکنید از اینها رو برنامه ای پیشنهاد بدید زمان بندی اجرای تام این تر تا چند وقت قراره اجراب شد. نمبرشون رو با مطالعه کنید. این تر با این هدف در روی گردیده است که سم خدره 206 رو در بازار خدره های قیمت میانه از 21 دسته تو در 25 دسته رفتش پیدا بخوانه کن. عددی. سم بازارم این بوده میخوام به این برسام. تیاد مشتریان این بوده میخوام به این برسام. درامن هم. این بوده میخوام به این برسام. روش شفا برای رساند به این هدف باید تولید محصول X از 80000 به 90000 دسته افزایش پیدا کنند یعنی افزایش تولید میزان 10000 برای این من هدف ترسم باید چیکار بکنم برای این کار انجام بشه و خودروهای تولید شده به صورت مستقیم به سمت بدیعی یا با تخفیض از روششی باشه مستقیم باشه بدیعی باشه چک نوشته باشه برای رساند بین این هدف 4 برنامه اصلی به شر از پیش بینی شده است پیش بینی شده هنوز قطعی نشده ما پیشنهاد میکنیم آقای پیمانکار ساختمان شما تو این بخش پیشنهاد میکنی برای اینکه مشتریان من از اینجا به این برسه کیفیت کار اینجا به اونجا برسه آ ایران هاست پیشنهاد میکنی برای که من بله هاست برای که اینجا به اونجا برسم این کارو باید انجام بدم پیشنهاد من اینه یک این کار دو این کار سه این کار چهار این کار فونداسیون ایران و عراق رو. بله. مشخص با اجرای برنامه جمعاً 100 میلیارد دیار، 10 میلیارد تومان سود نصیب شکر گردد و خزینه های اجرایی طرح نیز 80 میلیارد دیار، یعنی 8 میلیارد تومان شما 10 میلیارد تومان طرف اون سود داشته باشی 80 میلیارد هزینهش میشه 8 میلیارد. لذا این تعداد 20 میلیارد ریال سود خالص نصیب شرکت میکنه 10 میلیارد من های 80 میلیارد 20 میلیارد سود خالص سود مشخص میکنه هزینه سود مشخص میکنه. اینا رو خواهش میکنم جلسه اندید بدون عدد اینجا نیست. بدون اعداد که واقعا هم با چه اعدادی کار بکنید من که محرمانی نیستم برای شما محرمانی شد موسیقی کنید چیزی چون یه قلب خریبایی کوچیک یه مدر فرمتو کرده بکنید پاور اصلا اینو من من نه اصلا. نه من دیگه نشدم. من از آموزش دوست دارم. ها شو بهش داد که خودام خودام همیشه میاد میفیند مشکل فلش داشته. هر چیز داشته باشه. فلش داشته باشه. علامت رو بیکاری. آسایش ماهتیم پلنه فردا نه است داشته یه این بود اون کالای کربی یه کار تنمیتون بود برای آشویانی یه سرمت کنم من چرا که تر بهتون میگم داشته باشه درست چیزی به که من, من نوعی عنوانم مشاوره مواجیدی برای خودم دارم من برای اسطانهان برنامه دارم مثلا من هر سال از استان گرد، اسطانهان مادمی مارکاپولا ایرا می کنم برای هر استانی برای خودم حدد دارم که از این اسطان چمک گرشه می گیرم چه کار ایجایی می کنم هر اسطانی دارت به خودتون که هر درست که من چه این برداری از ایسا آفتن، داشته باشه داشته باشه، من هر استان هر منطقه مثلا نمونه میگم، من هر سال از مشهد قد از بستان مشهد، داره با کاخ موام باشه کپک با کار میکنم با هر سال پنجا ملیون توم هم درامت کرده اینو میزارم برای سال آینده، اصلا هفتاد ملیون هفتاد ملیون، چل ملیون، بیشترش میکنم هدف میذارم و برای, برای هم هدفم کار میکنم بینم من دستو پرشم پذاشتم دقیقه هم میتونیم من میکرد که هم جلوش بهتون یادش میک تا پنجرهش گذاشتم خیلی عالی. این جنو تو این هم خود صحبت رو نداره هم اصطورت کنید هم یه رو بیست داران وقت اینجا چون خیلی مهمه برمان بنویسید اینجا این بخش در کلاس مودگهتی رو برمان بنویسید بس, خات. خات از این باید دلیز چش هشت خط داشتون آتی خط هشت خط به آره بنیمسیم آه اون من بنیمسیم بعد یاداش برده دیدیم از شوش الان من بنیمسیم که من یادان راشتونم زیر کار در نمیم موسیم دیگر اینش کس بنیمسیم چرا؟ مدیریتی رو کار خلاصه مدیریتی رو خلاصه مدیریتی فقط خلاصه مدیریتی مال 206 شما نه نه مال خودتون. چی؟ بزنس خودتون رو. داوود بزنس خودتون برای بزنس خودتون شما برای انادیتر دبیستر سال 94. وا که که شما کاریاری یاب نیست هر کی مشخصه بله شناسیم اینا چی دی مشخصه نمیکنه توی این بخش باید نه نه همینا شرط فرضیات صحبت نکردین نگفتید فرضیات چیه آره نگفت رجیستر با این فرض میکنم 25 درصد بود الان میخوام 50 بشه حازم اون بیست میلیون رو میکنم 40 میلیون من کاله انجام بله بله. بله. استراحتی بود که منی کاش میشد تو حالا اگر بریم که صدا درصدی باید مشخص کنی یه درصدی عددی عدد داخلش باشه کنید به اینکه اعداد کار کنید واقعا عادت کنید اینجا میشه خاموش که درمید برگید آسان به این باید کار را تفاید آها باید نیست شخص بد بود خطا آخر شد